ازدواج با وجود اینکه تلاش میکنم نتیجه نمیگیرم برای بازتودن نمیگیره چه داره؟ ای داره؟ این توسول به اماموسه علیه السلام پیدا کنه و از را صحبت کنه و نیازش رو بگه انشالله حرص کنه که اگر یه مورد مناسبی برای من جهور شد و من هم برای اون مناسب اولین سفرم رو بعد از ازدواج پابوس شما میان بعد از نماز شاه هم از همین امروز شروع کنه 136 بار ذکر یا رتیف روزی یه بار هم شروع یاسم بکنه دنبال کنه انشالله سلطه کارشگاه بگید